بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلّ الله على سیدنا محمد و آله و سیّهین خب کسایی که در روز قبلی خوانده بود کی کی بودن؟ آر برا خو؟ آم شما نه؟ آزیکم کی خوندن؟ کی کلی نفر از که اونا کی ه؟ آم، نشاله، نشاله. هیچ نش. که آن روز روز. یک لحظه، یک لحظه. ایدا جان هر کسی که هر روز خواند یک آیه می‌خواند ما بس روز کادران می‌گنیم و انجام می‌دهیم خب با شما شروع می‌کنیم به شکل ترتیلی بدون صوت بخوانیم صفحه صفحه دوم از روی قرآن ندیدار حفظ باید بخونیم صفحه دوم خط اول صفحه خط اول صفحه دوم خط اول. کده هم سوره هست؟ آه، کافه دوست. کی بله خط اول بس. بس. الله میگو. خب، نحوه خواندن اشان چی مشکل دارد؟ آه، حاطب دوازده چی در آه، دوازده مورد رو حداقل باید رعایت کنیم خواهم؟ خب؟ حالا اگر یکی یکی نام ببریم، صداهای کوتا یک، کشیده دو، تنوین سه، سکون چار، 5 پنج، آداب قراعت یا تلاوت شش، آره؟ آه، چه بود دیگه اشان؟ اسم رفت قای اشباع هم نو دیگه چه بودن؟ کاری شده خب دوازده مورد بود که باید رعایت میکرده حالا اگر میخواهیم که یکی یکی برسیم باریم خل... خیر باشه، هم شما... شما کی میخواهیم؟ چی؟ سوریات اخا سوریا افهم شما خاطي بعدی بسم الله اعوذ فقط ان صدق الله ليس یک ساده شما خطی بعدی احسن باز خراب باید به گونه خودش بگه ها؟ خوب خوب سف شما بخوانید کدنش رو کنید ها؟ مشکل داشت آره آره یک کمتون باید رعایت میکردیم گرچه هنوز نخوندیم هی و چی فرق دارن ولی اونقدر هم میدانیم برسر آره. اداجه اناشورالله والفتح. در جایه هم که کمتونی فقط رد شدیم برسر خب صفحه بعد شما این خونده بودی دیرو اون روز دیگر شما که میخوانم خیلی عالی خانم خالق قصه‌ای خود رو خط کنید خب ازنا چی مشکلی داشت آه، آه. و بسم الله رم بسم رم به خط بسم الله الرحمن نشه آه. بسم الله <تصفيق> آره هست بسم الله الرحمن الرحیم ناشا خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ آدم خودش میدانه که او رحمانیر هست ولی از پیش آدم خود به خود رحمانور میشه درست؟ <تصفيق> یا رحمانر مثلا اگر بشه اینجا تلاش کنیم که این حراف به وجود نیایی انشالله درست؟ خب، صفحه بعدی کی میخوانن شما دو صفحه، دو گروهین، یک گروهین. دو, دو, دو, دو آها. خب، پس از شما کی می‌خونن؟ شما می‌خونید. خب، درستن بخونید. شما خاندن یک شما، نه کدام خودم شما خانده بودین. شما خوانده بودین؟ خب، پس شما امروز خط بعدی رو بخونید. چ شد؟ از شیطان آره دقت کنن خواه در ما عنا عنهو مالو هو اشباح شد؟ آره لحبیو و تب التقای ساکنن هم اینجا میشه ممکنه بشلحاشه ولی بیشتر اینجا حالت ادغام هست بحث ادغام لحبیو لحبینه نه؟ اصلش لحبین هست ولی این در کنار او و هست آره؟ او شما کسی نخوند؟ اه چی جز همم بابا شما یک نفر آمده خوانده بودین دیروز خب پس شما بخوانن که ختمش رو همین کنیم اعوذ من الله ببین بنابرای این است که باید حفظ بشه. خب تو سوری بابایشه حفظ کردم و متاسفانه آه پای خب انشالله از این بعد هر جلسه درسی که میین یک از صفحه باید حفظ باشن. انشالله تعالی. خب به پایان ببرین شما. اعوذ بالله من چی شد؟ آره انشالله دقت کنیم خانم خالق شما به تنهای خود یک آیه بخونیم صدا داره یک آیه بخون یک آیه پس <تام> <تكلم> <من جتلاح> ببینید ما تا هنوز یک بار دیگه همون نکات که باید رعایت کنیم را یاد آوره میکنیم انشاءالله که در جلسات بعدی فراموش نکنیم قایده خود پیش ما و شما هست نه؟ فهرستش باز کنید فهرستش فهرس اول اشید پیدا کردیم؟ نه خب، ببینید وحدت اول چیه؟ از از هجا هجا، یعنی همو تقریبا هه و هه یا هه و هه آه درست وحدت دوم دو چیه؟ یعنی باید چطوری بخوانیم؟ صدرکت کش نکنیم کش نکنیم یعنی یکی لغو تنا باشه و لغو نکنیم آه لغو نکنیم بعدی چیه؟ خروف مدود خروف ال... خروف خروف مدود مده ها مود مدود دارد مدود یعنی ماده ها در اینجا باید چکار کنیم؟ شش حرکت مده دارد شش حرکت؟ شش حرکت خیلی او در مده اضافی به وجود می آید خواهم؟ خب، خواه؟ خواه؟ بعدش چیه؟ تنویم بعدش؟ سکون و بعدش؟ خب؟ ادامه دو ما در قرائت چند مورد که است؟ یک یکی نام بگیرن. حروف المقطعیه. و خیلی عالی. سه شد. فقط یک سوال. کسایی که قرائت کردیم و کسایی که نکردیم؟ واقعا وقف رو رعایت کردیم امروز؟ بله خیلی خوبه بازه آره پس ان توجه داشته باشیم که رعایت کنیم خب آره ببینیم روزی دیگه که آمدین ما ان از امروز که دقتی بیشتر کنیم هر کسی که رعایت نکنه باید برایش نماز لوات بفرستیم استاد نشون درسته؟ خب پس امروز تا فردانه نه دیگه فردا خودمون سفر حفظ می‌کنیم. بله صدا هست. صفحه سوم از آخر صدای شما هست. ارا ایتالذی لاایک این صوره ها رو باید حفظ داشته باشیم دارید ندارید؟ با تلاش کنیم خط به خط از ذهن پیش بریم، خب؟ خط به خط در عین حال که حفظ میکنیم معنی هم در نظر بگیریم خب همین سوره هایی که خواندیم کله گه شما ترجمهش نبلدین یکس که والله هر کسی یک قل هو الله احد با نیستیم؟ بلد متاسفانه سوره هم ما بابا خب متاسفانه این مورد یادم نشد که به شما میگفتیم خب نگاه کنین در حفظ کردن قرآن یک چیزی که در حفظ خیلی در سرعت اشتخالت دارد ترجمه شان هست متوجه شدیم هر کلمه را که ما ترجمه شو رو بفهمیم بعدش آیه رو ترجمه شو بفهمیم و این در سرعت و ذهن سپاره خیلی اثر دارد هم حفظ میکنین و هم ترجمه شون رو بلد میشین درست؟ خب این سوره هایی که ما با شما تا هنوز خوندیم وقت سنگین نیست انشالله روز دیگه که امروز چند شمبه؟ یک شمبه؟ شنب دو, شنب دو شنبه آره؟ دو آه، امروز دو شنبه دیگه درسته؟ دو شنبه که آمدیم، سه صفحه رو هم حفظیم و هم ترجمهشان بلدیم حفظ نیه خب سه صفحه میشه دیگه دو صفحه رو که حفظ کردیم یک صفحه ترجمه شو و خط خط لازم نیست که هر چی در قرآن ترجمه کرده همطوره که خود شو بفهمیم مهم اینه یک چیز دیگه بعضی مشکل داره من یک روز فاصله یا آخر یک روز فاصله یک سر سا... هم وصلا الله على سيدنا محمد و آلها الطاهرين.